خانم مرعشی گفتن که اگر موافق هم دوشتان کما کارو با نظر همین دوستان می کنیم یه هایی که چاکتره بود ارز که بیشتر بحث در جال اول مشکلتره همزینا میگه هر کسی سلیده نرو رو بدن. ما کار اصلیمون رو وجود ادامه میدونم ولی اگر غزلهایی باشه و دوستانی باشن که دوست داشته باشن چون محالا میخوان اگه عمری باشه و خداوند بخواد و از تحباسم بگذاره نه. میخوان که این کار رو بلکه تمامش کنیم به با حول افعلا ولی که ادامه میدیم اگر غزلهایی باشه که موستانی اختصاصاً مایل باشن و غذل رو بگیر مشکلی بده کرده باشن یا بیده باشن به نظرش ناماده باشه که مهم اینا خب بهتره که آدم به غذب ساده تر و پایین تر رو بگذاره و نوع چیز که این عبادت حالا دیگه باز با نظر خود شماست و من عرضی نده خوب آن به حسن نورتایی و نظرم کنیم با سمالی اسلامی که نظرم کنیم که میکنم من ایش فکر کنم که این زبانی که از عربا بیشترشیم همین در مستقنم بیتره بکنم من فکرم کنم هر فرمکتایی که در آزم فکر به حضرت ما یک دوره کامل حافظ و از خیلی سنده ها تا سایت همه ترنبوشنند به این خدمت کردیم این قطمان شفای اعتقالی و این مشکل این که این قضل بهتر یا این قضل بهتر یا کود این بهتر بوتر که که نیده ما نیده اما کنم به بودی که یاده و ما و از هر غذری و هر نوعی که بوده در هر سرکیه که بوده چیزی یاد گرشتن شخصان بشم کنم که همون زوند گذاشتر ادامه بدیم و امید این داشته باشیم که احتمالا با یه مصد تفریح کردن قضیه و مثلا شاید مثلاً بعضی طورجه که شاید این جاید ها خود تمام این شاطر و بوده رو به تمام بکنیم من کبتم چون کنم که باقی این بحث رو بذاریم برای وقتی خودتون تناسیم که وقت کلاس گرفته نشه و به هر حال وقتی کلاس رو این کار اون اصلا رو خودتون به بحث بذاریم یا بعد از کلاس، یا پیش از کلاس و آدم نتیجه رو به هم بفرمیم کنم اما برای کسانی که بیشتر و که کلاس مندن و فنا کنی به این که همه قرار میکنیم نه من با این کتاب حافظ نام را خوشی میکنم حافظ در حد سه تا تا نمیانم چند تا از مهم مهم و آقای بايدی نفر رم در دو جلد نزدیک 10000 تا یا بیش از 10000 درست کرده و خیلی اگر اشتباه با استادی در خوشی این جبون بسیار قابل خوبی است. شنیدم، حقیقتاً می‌خوادی معت نحافظاً درست کنه، ملچه کنه که خبر ندارم چجوری به به هر صورت. خوشم آقا این دره ببین. خواهند، این است که اگر کسانی علاق مطالعه بیشتر در این زمینه باشند اون کتاب خیلی براشون راهنما نما و راه ها و در زمین، پنده ارز بکنم که یه دکه‌ای باز شده در در لسانجلس که آقای کتاپروش بای آقای کتاپروش رو دیگه مرافع شده دادن به تیپ هم، خیلی سهد و خیر خیره همگرد جویدن و دادگاه رفتن و چه کردن, چه کردن و یکی از اینا محکوم شده، این که بوده بیرونش کردن و گفتن که نه هر ما اون یکی او خانه رو فرمین آقایی که گفتن رو فرمین برید، این یه دوکون دیگه همونجور گرفته در چند قدمی شرکت کتاب شرکت کتاب اسم قدیم نیست یه دکیه واسه اینا نشت کتاب و این قیمتها رو به نهر بی گذاشته، قصدش البته هیچ خدمت به ام همبدان پارتی زبان نیست ولی قیمت تو ریشی کسته و دو آورد پایین که میخواد همه کتابورشان به خصوص شرکت کتاب میخواد بربیش به و باقیی کتابوروششان ناراحت شدن گفته که با هر حال من من میخوام کتاب عرضوتر بدم فعلا حالا به که فقا رو از میدون به درد کردن نه چه خواهد کرد اون خدا خوددا من نمیدونم ولی الان در حال حاضر، مثلا کلیات سعدی خیلی خوبه چاپ گوی یا معلوم فروغوی یا نمنطلان مثلا هیده دلو دیوان شمس اون قلوفتی مثلا 20 دلار. و قیمت ها همه به همین تردیب حافظ نامه مثلا نگم که باید فکر که قیمت من یادم نیست حافظ نامه هم قیمت شد ولی هرچی بوده الان به نصر یا کمتر از نصر این داره نیتوش اسمش نشر کتابه اِسنون آقام روستمیان اینجا به اداره کرد. نازدی تشکرش در دست بود. چنار که یعنی بغلش نه 4 تا می‌کنه ما. بله یعنی پول روز به روز خراب‌تر میشه بله پول بله. گرسنه‌ ولی به صورت اونجا خیلی خیلی قیمت ها تفاوت داره من گوی و کارتش رو گلشتم خونه نعی بردم حالا شما لطفاییم بارو میمونو بدیم در زیر پاس یه نگاهی بکنم شاید شاید که باشه با و با بله همه جور با تلفن میتونین بخوان میتونین بفرسی میتونین می می بگیرین و کتاب های مختلف فرصتیه دوستانی که قصد یه یعنی نقداری کتاب بخرن به هر حال بهترین فرصتی که ممکنه میده از الان الانیم بل. با و نخش دوستانش کنه میده اصلا ناییم دفعی از اقتلاعات نمیتونیم شواره شده؟ شما رو تلفنشون میتونیم ولی دوستان هم میتونم بگیرن و اونجا این کتاب حافظنامه رو که بگیرید این مقدار بسیار زیادی به من اینجا کمائکی اگر ما توضیحات خیلی بیشتر خواستیم اون وقت باید کرد خب بفرمین که بله بگم اگه که بگیریم اگر خب بگی نباشه که بعدان روفا دگر همجی مرجعی داشتی با هم دیگه صحبت اگر امکان داشتی باشی صحبت بشه که که چیزی بگین اول خود شای... از غزلا رو خود میشه اولی که من خیلی مشکلی که کدیم اولی که بکنیم بگو ناسم بگو ناسم بگو ناسم من اینه که جنوالی نامین غزلا رو دار کنیم هر طب اون رو خود جنوالی کشتک کنیم دیگه در برای معنی کردن اون رو خب اون میکنیم نایی که ساده از و یا میگذاریم م... نایی که ساده تره و... تجلی اگه بیا دوباره حرف نمیسانیم که دیده دوباره از سر باید. باش تا خود غزل خونمی ما. غزل سن پنجوی ها باید بکنم براید. بستا چنده نشده. باید پنجوی یکی از اون غزل که تقریبا هیچ چیز نداره همین غزل هاید. بخونم. بی مول بین رخیان خوش نباشد. بیباده خوش خو ترف چمن و تواق خوشتان بیلال ازار ازار بیلال ازار خوش نباشد رخصیدن سر و خالت گل بیسوت هزار خوش نباشد گایاه شکرلد خوشندان بیسوت خناف کناف کناف دوست کنار؟ در کنارش بگیره و همه کنار خوش نباشه هر یکی کنار خوش گل مل خوش نه،, گلو مل نه. گلو. مل باقه گل مول نه، گل و مل باغ، باغ گلو، مول خوش, هست. خوش هست. <متصفت> لیکن بی صحبت یار خوش لیکن. <متصف> همیشه من لاکن <متصف> نبوده، لاکن نبوده شده لیکن. باغ گلو، مول خوش هست. لیکن بی صحبت یار خوش نباشد. هر نقش دست نقش نگار خوش نباشد جان نقد محفر از کااف از بهره ننگگاه خوش نباشه و... نظر خیلی ساده ای است اصل <تصفح> که چیزی نداره صحبت من این دوستی و رفاقت در بهیکی از من روش در صحبت معنی دوستی و رفاقت در بیت پنجم و صحبت یار یعنی همون میگیم در مصاحبت بلانکتی از علم میگیم که در مصاحبت بلانکتی از این همونه صحبت یعنی دوستی یکی هم نگار نگار رو باید توجه بفرمین که در حقیقت هم معنی نعقاشی رو میده دیگه بعد میگه نقش نگار قدیم مرسوم بوده و هنوز هم هست در بعضی نقاط که دستا و پاها پاهار و خانم‌های خوشگل نگار می‌کردن نگار کردن این بود که یه چیزی مثل دستکش از پوست دست میکردن. می‌کردن که این تمام دست میشون فقط یه جای گلوه های مختلف به مختلف تو این دستکش سوراخ بود که دوست ازش پیدا بود. بعد روی اون انام می، کف دستور رو پشت. بسن. روی او هنام میاست و میذاشتن رنگی وقتی که بعد که پاک می یعنی میشستند، همون ها نقش گل و بوته و اینا بود خیلی قشنگ و اینو بهش نگار و نگار کردن یعنی این و من اینو در پاکستان دیده بودن بعضی زناره که به این ترتیب درست کرده بودن نگار کرده بودن. بو یا در بم ایران هم در ورزی مستهام اینا هنوز به عنوان یه نوع هست که دست و پا رو نقش می‌کردن وسیله هنان نقش قشنگ و اینو بهش نگار سعدی میگه حسن دلاوی پنجه ایست نگارین تا به قیامت بر اون نگار نماند پاک میشه دیگه این نگار یا مثلا فرض فرموید که میگه به دست های نگارین تو در حدیثایی مثلا معشوق اگه دستش خوشگلم باشه تازه هم نگار کرده باشه سعیم کنون نشونم بده دیگه به دست های نگارین تو در حدیثایی هزار دل ببرید زین ها این زین دستان. دستان، دسته، فعنی مکش و فریب هم هست. عشق پس نقش نگار که میگه بعد نگار که اسم اون نقش کردن دست و پاس تو معمولا مردم این کار نمی کردن، فقط زن ها به م... زن جوون هم میکردی که پیر که اتیاجی به این کار ندشتن یعنی یوم هم ندشتن بنابراین زن جبون به اسم نگار شناخش یعنی معشون و حافظ اینجا بازی کرده هر نقش که دست عقل بنده جز نقش نگار خوش نباشه اینجا هم نگار معشون هم اون نقش بیداره جان نقد محققر از محققر یعنی پوچک از بحر نصار خوش نباشد اصلا شعر داریم و بوده شعر و نظمم بهش میگن یعنی کلماتی منظم شده نصر یعنی لو لولو منصور یعنی های پراکندی یک صورت فلکی هم است که ستاره‌های پراکنده به نام نسر بنابراین نثار میدونید می میریختن همطوری چون پراکنده میشه و بهش مؤتن نثار این نقل و فولیسفید و اینجایی که سر عروض آماد این کار می گفتن نسار کردن روی هنوز روی ماشمز آمین ها هنوز بیاد دارم که روز اون فرنج قرمز کرده ی زفرانه که روی پلومینجان میگن نسار کن نسار کن یعنی زفرانه رو یه چه نزار این رو این تراکن این نسار نیگه جان نفذ محاقه از بحر نسار خوش نفذ اون بخون آقا چه را سنید پی دیگر جوان جام به سمن خواهد جام جام به چشم نرگست شباید نیران کارد شد این تا تا گل که کشید از دنهر جان گل گل تا سرا پرده گل نعر زنان کارد شد گرد به مسجد به خرابات شدم قرد مگی مجبس وعد دراز از تو زمان کارد شد ای دل از امروز به فرداف کمی مایه نبض بقا را که زمان خواهد شد ما به منه از دست قدر تین از نظر تا شبیه رمزان خواهد شد گل عزیز است غنیمتش مریدش صحبت که به با آمد از این راه و از آن خواهد شد بطره با مجلس پونس از ان و سرود چند رویی که چنین رفت و چونم خواهد شد حافظ از بحث تا آمد، حافظ از بحث تا آمد سوی اقلیم دو جون زدمی نه به زداش که زبان خواهد شد یکی از شعرهای بسیار بسیار امید بخش این حافظ مرهمه دلهای خسته و پیمنده پیمان های گفتت هر خست دلی که پال می زنه به حافظ از این قویل از این قویل پال خیلی زیاد در حقیقت مرحم دلی از کنم که این گم گمگشته بازاید بکنم فهمت بزفره ها دیگر در فرایت در فکاری زنند که خصوصت اینا زیاده حالا یکی شم از بهتریش هم اینه نفس باد سبا مشک پشان خواهد شد مش ماده خوشبوی نافع آقوی خوتنه توضیه مفرسل مشک پشان میشه یعنی بوی گل میبره این برم حالا تیز دیگر جوان خواهد عرقوان جام عقیقی به سمن خواهد دار عرقوان فیرم مثل عقیق و مثل اینکه راجر می و می قبلا هر سر ولی خیلی به اجمال برای کسانی که نبدن میگن که الان شراب های شام شما می‌گیرید، می‌بینید باشته، من خواهید که فسلمان دلهم دارید لاوه و اون دارید اما می‌بینید، اینهایی که می‌بینید هیچ تاری نه تار نیست اصلا یعنی کاملا اون طرف چه پیدا اینو به وسیله قفه گریز از مرکز و ماشینایی که تانتری پوش به اصطلاح گریز از مرکز هست در آن واحد در ظرف چند دقیقه این شراب رو میچرخون استفاده می‌کنم تمام اون ذرات ریزی که توی شرابه بیرون میکشند و این شراب شفاف و صاف بشه به این میگن می, می لعل لا لع. کاملاً شفاف اما عقیق عقیق رو دیدی اونم سرخه اما تاره شباق نیست وقتی که این وسائل سانتفیزن رو نبوده شراب با دیدش تو خم تا ساخشه اولم اون مواد درست داشت خیلی زودتر می نشسته ولی مقداری ذراست بسیار بسیار ریست توی این شراب بوده که ماه ها یک سال طول می تا اینا کم کم کم کم, کم تنشیم میشه بنابراین گاهی مثلا سر خون بنزه نیم وجه، بنزه یک وجه صاف صاف شراب لال بوده یه ذره پاییدارش هنوز این ذره ها تنشی نشنن شراب تار بوده اونو میگن میه عقیقی اون اولی میه لعله، دوبومی میه عقیقه و بالاخره آخرش هم دوریه طعنشین شراب. طبیعی است که می علان از می عقیق. صاف و سرخوم به وسیله هم نبوده، بعد می گذاشتن تا این بشه، وسیله نداشتن صاف. بنابراین جام عقیقی که میگه اشاره اون نوع شراب عقیقین هم هست. در این حال که یه بزنی در عالم تخیل درست میکنه خاجه که جام میده به سمن جام عقیقی میده برای اینکه خودش روکرنگه در عین حال این کلمه عقیقی که ده اشاره به اونمه عقیق هم هست عرقبان جام عقیقی به سمن کاه دا. چشم به نرگست نرگست شبیه چشم چشم نرگست به شقایف نگران خواهد خود. این تطابل تطابل از طول یعنی دراز دستی، دست درازی، درازدستی یعنی ظلم کردن ها کسی رو رای این تطابل که کشید از خمه هجران بل تا سرافرده گل نرزنان خواهد کنید دو تی کلمت میگیم، یکی سراز، یکی فرده فرد ندره ها، فرد ندره برد رو میگیم، <تصفح> ما امروز منزل رو بش میگیم خونه ولی خانه منی اتاق، این چند بار گفتم، خانه منی اتاق. هنوز هم تو خونه ها میگن مهمون خونه یعنی اتاق مهمو آبدار خونه یعنی اتاقی که شربت و حالات خونه یعنی اتاقی که آشپزی آشپسی صندوق خونه یعنی اتاقی که صندوق پس خانه یعنی اتاق منطقه از وقتی که ما لحظه اتاق رو گرفتیم خیلی هم قدیم نیست شما تو سعدی تو حافظ یه دفعه اتاق نمیدیم وساق هست وساق شده و اتاق باید اتاق بعد جای جای خانه رو گرفتیم لگه خانه رو معنی اتاقه باید که اتاق برای،, برای اتاق گرفتن خانه رو معنی سرا گرفتن اون وقتی که کانه منی اتاق بوده، منزل رو، حیات و اتاقهای متحدش کن بازن، سرا تا نشنوید مسجد آوین بانک صبح یا از در سرای عطابک قریب کوس لب بر لویچ و چشم کنیم، سبلهی گوبت برداختن به گفته یهوده یک کنیم سرای عطابک یه پرده که یه پرده است این فارچه پس براپرده یعنی خونه ای که سرایی که با فارچه بسید حالا شما تصورتون از خینه و چادر و اینایی چیزی؟ چیزی؟ موقعش مثلا هم که مربع که یه نفر یا دو نفر ایسا ولی وقتی لشگر کشی می‌کردن و می‌رفتن یا, یا، عشایر که زندگیشون اصلا زندگی چه خب چادر خان که قدر چادر افراد معمولی نبوده نه اینکه اون خان باید گندشون، نه خان رفت داشته، آمد داشته عربا وجود داشته، کار داشته یه چه باید میمده که میمدن به دیدن این سنواتشش باید یه دیگه بودن پندقا و وسایل چیز دیگه بودن بنابراین چادر رو خیلی بزرگی میزدن که توی این چادر تقسیمات داشته یعنی درست میسی یه منزل مثل یه سرا درست میشده توش هم خانه های مختلف بوده اینو میگوستن سرافرده از چادر بزرگ که داخلش تحقیمات کشید این تطابل که کشید از غمه هجتان بل بل تا سرافرده گل نعرزنان خواهد خواهد شد یعنی خواهد شد گرز مسجد به خرابات شدم پرده مگیر یا رفتم شدم منی رفتن اگر از مسجد رفتم خرابات ایراد نگیر از من برای اینکه معلیس وز طول میکشه و وقت هم این که اون که ای دل ار اشتت امروز به فردا فکنی مایه نقد بغا را که زمان خواهد میگه اول ثابت کن که فردا زنده ای بعد اشکی که میخوایم رو بکنی بزن فردا ولی وقتی این معلومی است یعنی نقد بقای تو زامن نداره چرا پرنه اون تو میدرسی فردا؟ بیت بسیار قشنگه قشنگه که خیر همه بیت حافظ قشنگه ولی یه بیتی بسیار معصفلتر از اون درسی یکی ساویا اشرت امروز به فردا ما فکرم یا یا گلی یا یعنی اگر میخوای اشرت امروز رو بزنی به فردا ز دیبان قضا خط امانی به من از آسمون یه ساقه از که فردا زندگی هر بینه سوید یا اشرت امروز به فردا آمده کن دیوان قضا خط امانی به من حفظ امان یعنی تأمین داری که پر این چشم شبه منم من چه آسفالی هست چه همینی رو عذیت رو میکنه به هیت عذیت میکنید. ماچا رو بر بعد زمان مردم اینو میگن زمان برای اینکه با اون زمان اشتباه نشه ولی این درست میسونم زمان اونم زمان اشتباه هم نمیشه همون جوری که چهار تا سیر داریم ایش کدوم با هم اشتباه نمیشه سه تا 6 داریم ایش کدوم هم اشتباه نمیشه این هم ای دل ار اشتت امروز به فردا آفکنی مایه ی نفه بغا را که زمان خواهد؟ زمان یعنی زامن همون. ماه شعبان مده از دست قده ببینید که قده در اصطلاح شیرازی های دوره حافظ معنید جام شرابه نبه معنید این لگوندهی ای که حالا امروز ما عنوان قده پاسه یک بزرگ رو میگن قده اونی قده و جام ظاهران اینا تو فرهنگ ننوشتند ولی آدم به تجربه حس میکنه جام رو جام پیمانش که ظاهرا فلزی بوده یا شاید عیانا بودی بی سوابق منصبی و وزن عطابت عرضه دار تا از آن جام ظرفشان جرعه‌ای بخشید جام زرین خیلی آمد بنابراین جام فلیلزی، بس ولی مثل اینکه یک جام بوده، من درست نمیدونم ولی مثل اینکه یک شاید هم ها بوده نمیتونم ولی به هر جهت یک کسی وظیفه این کار ساخیگری رو داشته و این سایل خیلی کارش مشکل بوده برای اینکه مواظب بعد باشه اخلاق همه باید دستش باشه بدونه که کی وقتی م میکنه گریه میکنه کی وقتی مض میکنه اوربده میکنه کی وقتی مع میکنه نمیدونم بعد شروع می مداراحانه دیگران شدن. نظر کسی به مسی برسه بعد اگر جماعتی نشستن یکی دو تا جامپر پرده ای تا سه جانپورده ای که تازه میرسه اضاب اینال داشته باشه. تمام این مسائل مربوطه به چیز رو بعد از که کمی ظرفیت زیاد و جام خطای متعذب داشته که راجع به خطای جام هم گفتیم براتون دور و برداد و مصره و ادرق آش و کاسه گر و خوردینه عرض کنم که به کی تا کدوم خط جام بده اینا وظایف ساغی گری بوده کار مشکلی ولی دوو چند تا جام بود متاد هیس چیزی نداشتند، هیک اکراهی نرشتن از این که کسی از جام دیگری هم بخوره منطقه اگه مئلس خیلی مفصل بوده خب شده ٦ا چا چا چا چا که ای کار و اینکه دودتر برسته بودم اما اینکه هر شخص یک جام داشته باشه اختتافن با دیگری از اون نخوره فکر نمیده نه نه نه سعی می‌کردن که سعی که جوان خوشت می‌هایی رو چه که تو مجلس شراب و اینا رو هر جهت زوغ آدم چیزی اینست که معمولاً ساخی رو ازش از زیباییش تعریف کردیم. ولی لزومن نبود زمش کنیم. حتی بعض اینجاها خط ساخی گر از این زونه زند نقش براب ای با تارخ که با نا به مناقشه باشه صاوی کارتر اصلا نیست دیگه چرا کنیزان کنیزان مجلسارا چه بخونیم همین ذهن کسی نمیونه صاوی تلفن خردی نخه خانم های مجلسارا معمولا کنیز هستن که وقتی خارجیات میشن برای پاسگاه میذاتن आवाज میخوانون میرفسیدن تخته وازی میکردن شطرنج بازی میکردن انواع اصلا وسایی سرگرمی آقایی نفره با ماه شعبان مده هز به قدر که این از نظر تا شبیه اید رمزان خواهد شد ماه شعبون ماه قبل از رمزانه و اون روزای آخر ماه شعبون الان منون جاهلا و لاتا و اینا ما را از چیزی بخورن خلو به افراد در علواتی و اینا و هر و این کار بهش میگن خلوخندازان خلوخندازون میگن این بریم خلوخندازون یعنی دوستان بیگه بیگه نیست این وساطا. بریم داد دل و داد عیشو بگیم اینجا خلوخندازون میگه میگه در ماه شعبان قده و زنین نذار برای این خرشید خورشید قده تا شب اید رمزان اید رمزان اول ماه شباله اید فتر. از نظر تا شب اید رمزان خواهد گل عزیز هست. بارها گفتم گل یعنی گل سرخ و گل سرخ عمرش خیلی کوتاه دو سه هفته نیشتر در شیرازوندار دو سه هفته نیشتر گل عزیزم قلیمت چمریدش صحفت صحفت با دوستی و رفاقت هسته که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد از این راه آمد به باغ از اون راه میره با مجلس اون سر قزل خان و سرود میگه فلسطه شب شب ایکش فلسفه نگو حکمت و سبا نبا قوزل و سوت بخون چند گویی که چونین رفت و چونم خواهد تو حافظ از بحر تو آمد توی ابلیم و جون قدمی نه به وداعش که روان که حافظی بهت ارفانی میگه خبیص مرادش مثل وقت از مرگ می‌گفتن که سرکی و وسال می‌رسید زبان که ذات هر این سیزنگی که برای تو آمده در اقلیم حجود بیا که تو گرفت بله تخیل شاعران است در بعد که در خیال شاعر در باغ آرسته او خوب. عمومی از میخونه این کتاب نامه to مشکل نیست مرا را مهر چشمان به سر ویرون نتاهاد شد قضای آسمان است این و قضای این سرنوش اونچه قلم زدش دیگر گیرید بیگرگون نخواه از باز اینجا گفتم که رقید به معنی حریف عشق و رقید به معنی این نیست به معنی مراقب و محافظ معشوق است رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگدار مگر آه سرخیزان توی گردون نخواهد شد. من را عروض ازل کاری به جزبندی نفرمودن این اون عقیده عشقری است عقیده دینی، چلامی دوزگار حافظه که معتقد بودن که سرنوشت هر کسی از روز اول از روز ازال رقم زده شده و عوض نمیشه از سعیدو گفتن این حدیث و بارها از سعیدو سعید فیل بطن امه و شقیقیون فیل بطن امه خوشبخت تر شکرم مادرش خوشبخته بطبخت تر شکرم مادرش بطبخته بعدی داره که اگر خدای نباشد به بنده ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران نداره که گناه نبود و عبادت نبود و بر سر خق نوشته بود که این مقبل از آن مردم <تصفيق> پیش از من و تو و روخ جانها کشیدم تقراغ نیک، وقتی و نیل بده کنید هزار تا بیتونیم دوید، میتونید پیدا بکنید که مشریت حق حاکم بشتر نوشت بنده است و هر چه خود هر هم همون خواهد شد این که که من روزه ازل کاری به جزنگی نفرموزن اگه من رندم از اون روزه ازل روزه دی آغاز این طور معین هر آن قسمت آنجا جارت از آن عفضون نفرم خدا را خدا را یعنی برای خدا را به معنی برای خدا را یعنی برای خدا محتسب محتسب یعنی بازنس شرکی این محتسب تمام تارهای خلاف شرک و پشت سیزیده نه اینکه فکر کنم فقط شراب خوردن یا نمی‌دونم خود یا یعنی این کارها خی سنگای چسبو رو باعث می‌کرده چنطوشینات آین کسی جاد در فطمعبر می‌کرده نمی‌اومده این مقدار زیادی پاره‌ای که الان شهرداری‌ها انجام میدن محتسب می‌کرده البته اوازه به این که شراف نفوشن رو میزینم اون خورا هم بوده ولی به طور کلی و یک کتاب هست عربی شده یادم نیاد به تو عربی هستن اصلا و فارسی ترجمه شده زیر عنوان آین شهرداری دوست دوره من دوستر جعفر شعار اینو از عربی و فارسی ترجمه کرده معالم قربت احکام الحسبت محتام محتسبی رو محتسب چه وضعیت می این یکی جالبترین کتاب هاییست که از قرون گذاشته برای ما مونده برای که همچیز که عرض کردن مهمیش نمی محتسب مثلا محتسب شعرت خوبی هم تو شعر فارسی نداره همیشه بعد گفتش درزش مثلا شعرهای صوفی مشرف خیلی بعد گفتن این است که بای خمول بیشا خودمی در نظرمون میکنه و بودنم البته منکنه نبودن اما دقیقا وضایف ما رو نمیدونه این معارم رو گربه اولا وضایف محتصر به دقیقه میگه بعد از اونجا معلوم میشه که چه گرفتاری ها قدیم داشتن مثلا تو مواد چه چیزی تقلب میکردن و محتصر اینا رو میگیره و هم کارهای دیگه همه این مسائل خیلی خیلی کتاب جالبیست این آین شهرداری و یکی از بهترین من عرقیش خوندم آقاستون وقت هم ترجمه نشته بود ولی یکی از بهترین کتاب ها است من خونده خیلی کتاب جالب اینو اگر حیله کردین حتما بسین اگر دنبال این ها خواهد سرتون سر درست بکنم رسیم و قدیم نوشه شده من دقیقا نمیدا قرن پنجمه شد بله کامل و کلی همه اینا اولا علمدار این یعنی بزرگ این مکتب قضالی امام محمد غزالی و اولین و آخرین کسی که لغب حجت الاسلام گره حجت یعنی دلیل پندو پندو پندو پندو نمیستر آم نکن و نفوزی که غزالی در ویان مسلمان بعد از خودش کداشت هیچ کس دیگری هم همچنی نفوزی تجنه هرگز فعل بینید شیعه سونی کل مسلمی و پایه گذار و بنیانگذار یه مقداری از این اقایت به علت منطق بسیار قردی که داشته غزالیشته، است و اینا، اینا که دیگران می حرفای می زنن، نه حرفای غزالیش کرده. بابل، اقید رایه که اون روزگار همه مردم بوده، حافظم بود. خدا را محتسب، ما را به فریاد دفون ای بر. تحبیر شایرانه یکی ما رو به فریاد می و دفت برش که ساز شر از این افسانه بی قانون نخواهد بی قانون نخواهد شد یعنی بعد پوک نمیشه ساز شر به این تحضیب پوکش قراب نمیشه از این تو ما رو ببخشی فریاد فریاد دفنه هیچ خلالی به ارکان اسلام وارد میاد و ساده شر از این چیز که نمیشه یعنی کوکش دایه نمیشه شراب لحلو خوشبختان شراب لحلو قبلا توضیح بنا شراب لحلو جای امنو یار مهربان صاغی یه منطقه کی می خاوره گیلان. اه. این ماریا کی می خاوره گیلان من بعد توضیح توضیحیدم برای اینکه بله برای اینکه گروهی که چلن معصوم اینی که چون آب و هوای گیلان خیلی قدیه که گیلان نیمیره این این درست نیست. مطلب اصلی این است که مردم گیلان در برگزاری مراسم جنازه و مرد و اینا مهربان ترین مردم ایران است. و به محص اینکه کسی کسیش می‌میره اینا مالا فرزن گذاشت کسیش کسیش می‌میره بلافاسره تمام مردم در و همسایه میان و اول کاری که می‌کنن اینه شما مصیبت سر از کنه خودش می‌برن بیرون به کلی بیرون و یه از اینا موظف میشن که سر اینی گرم کنن و بگن و بوشینن و حرف بزنن بعد خودشون تمام مراسم رو به اهدین از برداشتن مرده و کفت مدت دفت و دادن مراسم و دادن آشود مراسم شب چله و شبه هفته و همه اینا رو انجام میدنن و باید از چله مرد یا زن مسیبت رسیده رو برمیگردم مکنن بنابراین چون بهترین اصطلاح نگهداری و فضیرایی رو مردم گیلان از مصیبت سیدگان میکردن، اینی که میگه مرد میخوای برو گیلان. و, و این محلب ایست که جایی فده نمیکنید. این در نیزاخان کرمانی در یکی از کتاباش که چاپ نشده. نوشته بوده که گفتن مرگی نخواه برو گیلان و به خیالش این بوده که یعنی گیلان جای بدیه نوشته بله همه ایران بهشته چنین چنانه ولی گیلان نظر هواش خوب نیست که گفتن قدیم تو مرگ خوب رو گیریم یک کسی در اون هاشیه و عرشه نوشته که نه این میزه آخان کرمان بوده اشتباهی یارش پیدا شده و خیال کرده که این به این علت نه این به این علت نیست به علت مهربانی فوقلاده مرزان گیلانه در موقع مصیبت کسیدی و این شهر تو گفتن بازید هوای گرمان هم نیستید کسید؟ هوای گرمان نیست، هوای گرمان خوبه اونتا هوای بریه دیگه، هوای خوشت شراب لعلو، جای امنو، یار مهربان ساقی دلا به بهشوت سارت اگر اکید؟ اگه حالا قرار خوب نواجود دیگه چه می‌خوام خوب بشه به صفت تفضیلی است به معنی بهتره وان که تر نداره ولی معنی بهتری دل عاشق به شودوار است اگر عقل میخواد بود من همین باشد که پنهان مهر او برکن کنار و بوته آغوشش چه بوده چون نه توضیحی نده مقاله ما نوشتیم به جلوی حافظ حافظی سایه و حافظی من لگی اینا از این حافظ سایه تو نوشته مجال منم باشد فینهان اشغ رو او ورزن الود از اون نصراها نوشتیم این که از خورش ننوشتیم بعض این نصراها بوده عشق اشغ رو او سایه او رو ترجیح کردیم تو این نهر رو ورزن گوشت من نوستم نه این درست نیست که تو پنهان نمیشه اصلا رتبا میشه، آدم عاشق عشق اصلا جد, جد لوازه میشه که بنا بنابراین پنهان عشق رو او نمیشه. نمیشه مهرورزیه که ممکنه پنهان باشه یعنی آدم یکی سید تا تایدلش پوست داشته باشه و این احساس رو پنهان بکنه نگیم اگر حال اشراسی تو پناه کردن می کنیم مشروع یه گیده نقش غم سینه ی حافظ محصولش با عشقه ها اون عشق می که موجب تسلیم میشه شه کردن بار دلو و می میکنه بار غم سباک می کنه و می گه ای چشم. نقش غمو از سینه ی حافظ جستشوند. که زخم تیغه دلدار است رنگ خون نخواهد ولی این شفافیت دیگر و سابور نیست خب یک تن استراحت بکنی منم خوبه که بتراها خوب بخون. و عدیش کدوم این؟ که روز و شب خورقت یار آخر شد زدم این و دوزشت افتر و آخر شد آن همه نازو تنهان که خزان می فهمون در قدم باد بهار آخر چون که این که به اخوال کلخ گل نسبت باده و شرکت فار آخر شد نخوت باده که امی کشد متقب پرده غیب دو برون های که کار شب کار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز از غم دل همه در سایه زیدنی نگار آخر شد باورم نیست زبت احضی اعیام تنید یه غصه که در دولت یار آخر شد اون یه خود رو بچست باورم نیست بعد اهدی ایام هنوز قصه خسته که در دولت یار آفر شد ساق یا لطف نمونی قدم از قرمه که به تدبیر تو تشویش خمار آفر شد در شما رفت چه نیابد کسی حافظ را شد کسان قصه بین حتم شما آفر شد بسیار بازی که از قضالای امیدبخش از هل که واقعا امید بخش و مجد بخشی که من بوز اجران و شب فرغت یار آخر شد زدم این پا گذشت افتر کار آخر شد آن هم ناز و تنقام که خزان می در قدم باد بهار آخر شد. شکری زد که به اقوال کلحتیشه گل نخفت باد دی و صفت خار آخر شد صفر امید که شد معتکت فرده خیل او برون آل که کار شبتار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز از قم دل همه در سایی بیسی نگار آخر شد بابرم نیست به بد اهدی ایام هنوز قسطه که در دولت یارا آفر شد ساویا لطف نموزی قدهت فرمی با که به تدبیر تو تشویش خمار آفر شد بر شما را چه نیاورد کسی ها فضران شد هن قسطه بی حد شما آفر در هر بیت اول اون گذشتن اختر و فال زدن این است که می که معتقد بودن که ستاره های آسمون و به خصوص سیاره ها در سرنوشت آدمیزاد و سرنوشت چیزایی روی زمین محسرند اینی که می دونید. بنابراین می که اولا اولا گفتن که فال نیک بزنید همیشت. حدیثی داریم از پیغمبر عکم میفرماید که تفعل مو بالخیر تجدود و الله فال نیک رو بزنید اگر خدا بخواهد او رو خواهید یاد ولی فال بعد رو نزنید برای این که همین رو هنوزم هم میگن, میگن آقا نه نه یارتو کار بعد زدن رویه طرف خراب میخواد این حد اقلشین که حتمید بنابراین میگه فال نیکو بزنین بعد معتقد بودن که اگر ستاره مساعد در راه باشه و ستاره مساعد در اون منزل مساعد معین باشه این فالی که میزنن که امیدوارم کارت درست شد یا دیدم که کارت درست شد این درست شد این همینو میگه هنوز درست نشده دو میگه که روز هجران و شب فرغتیار آخر شد در که آخر نشده میگه این فال زدم روز هجران شب فرغتیار آخر شد زدم این فال گذشت دختر و خار آخر یه وقتی من این فال زدم، ستاره مساعدم در راه بود بنابراین فال درست شد یه جای دیگه باز حافظ همین ای به ستاره در مورد فال داره دیگه زه دا اخترم نظری سعد در راه است. که دوش میان ماه نو و یار من مقابله از اختر نظر خوب دارم همین هم. روز هجران شب فرغت یار آخر شد زدم این فعال گذشت اختر و خار آفز فکر دوبامی توضیحی نداره ویتو هم هیچ کاری تو گوشه گل فقط هنوز این کلاههای قشقایی گوشه داره یعنی کلاهی که आम्ही بهش قلنمادی میگمون سرش اون تا این دو طرفش یه زائده داره که اگه میکشم میکشن پایین که رو بگیره اگه بخون میکشم والا اینجاش یه که به صورت یه نقاب کوچولو این دو طرفه اونا روش میگن کلاه میشه و چون گل برگ برگه و سر سر بوته گله نیست کلاه میگه به اقبال کلاه میشه گل نخوت عباده دی و شغلت خار آخش معتکف اعتقاف افلا نوعی عبادت و عبارت از این است که اشخاصی نظر میکرد که چهر روز برند و به عبادت بنشید در مسجد یا در یه گوشه خلوتی جز برای قضای حاجات ضروری زندگی از قبیل خوردن، از قبیل بیرون رفتن از قبیل تجدید وزور و حاجت اینجوری از اونجا بیرون نیان و تمام وقتشون رو به عبادت بکرند اینو می‌گفتن اعتقاق و کسی که می‌رفت این می کار می‌کرد معتکف بهش می‌گفتن همونه که توی که هم بشن می‌گن چله نشینی می‌گه صبح امید پشت فرده‌ی قیل چله معتکف بهش می‌گیم گرد صبح امید که شد محتکه به فرده قید گوب برونای که کار شبته ها راخت آن پریشانی شب های دراز از غم دل همه در سایه ی گیسوی نگار نگارم تاریک دراز هم هست مثل درازی شب و این دوید چقدر لطیفه این دوتا به هم تشکیل کرد آن پریشانیه در دراز، از قم دل، همه در سایه بیست نگار، آفست. <تصفيق> این حالا جای بهتر که الان، الان من نمیدونم فکر کنم، ولی این نسخه خانلری <تصفيق> ولی، شب‌های دراز، شب تاریخ بود، درازه تو کسی یار شما خواست دست منوزهی گفتش که جان تو شب به شبهای زمستان مانی از باید سیایی و درازی و خنوکی جان تو به شبهای زمستان مانی از بسک سیاه یا درازی یا خنوش. شاعتم از بله، بله، نسخه از این این واقع بگرد. بله، حالا باید تعمل بکنم، من آنان که نمتینم باورم نیست بدعهدی علیان میگه چون روزگار بدعهده با اینکه که قصه قصه از یار آخر سده ولی من هنوز باور نمیتونم بکنم برای زمانه روزگار خب فرشته ایست برای این بام لاجه وردندود که پیش آرگی عاشقان کشد بگاه از بدعهدی روزگار میگه باورم نیست این قصه قصه کم ولی میگه این تموم شده. من نمیتونم باور کنم. یا لطف نمودی. قدهت فرمه ای که به تدبیر تو تشکیش شما آفز هست توشنه بگی در شما را چه نیاورد کسی ها پس را شد میاد شما بله بخون نوشی اس فرمان تے واز نشر گائے ائی کہ بیشتر رو این سرعت که نمیتونن توان ها تحلیل ببرن۔ به طریق محطبه طرف سرای محبت کنون شود مهمور که کار از این یار مرد شد محنید. و... اول که خطاب به شاه سوجار. سلطان شاه سوجار. و اون جلد دوبه این شاه های محاصر حافظ همار هم داده زمانشون هم داده دیشتر این دوران شاعری حافظ که در اون دوره راحت هم بوده و روابط خیلی خوبم با شاه داشته دوره شاه سوجا البته با ابو اسحاق خیلی خیلی خوب بوده خیلی هم توس بوده خیلی هم ناراحت سجا خود ولی حافظ جبونتر بوده اون روزگاه دوران ابو اسحاق هم خیلی تون ندیش افشت بود بعد مبارزه دی میاد که مطلقا اسمی از مبارزه دی تیمان حافظ نیست به جز محتسب دیشتر مبارزه دی که محتسب محصوبش باده با محتسب شهر ننوشی زنحال. به ها که پرد باده از تو سند به داد اینم معتی بوده که وحیه قیدر طریق رندی از محتصف بیاموز مخص تو در حق اون دست این گمان نداردن دیرهای جانسور از کنم که پرحال بعدش شاه شجاعه که مدت نسبتاً طولانی من حالا یادم نیم شاید 20 سالی نجس دلده سالی دوره شاعری حافظ در دوران شاه شجاعه اینی که اشاره های زیاد به شاه شجاعه داره و شاشده آدم با ازتداری بوده خیلی با اینکه تحصیلات زیادی نکرده ولی به عربی نامه می نوشت تنجید احفایی ها شعر می خیلی آدم با کمار و با فضلی بوده و طبعا قدر حافظو رو می عرض کنم که قبل از این که شروع کنم به این باید بگم که یه شاعری بوده از محاصران حافظ خیلی داستانه که حافظ قبولش هم نداشتن شاعر بوده بنامه کمال خوجندی که میگن عالی قدری هم بوده این کمال خوجندی معاصر حافظ بوده یه غزل داره به همین وعد من فقط بیت اولشو میخونم حالا این بیت اول این به این قشنگی ببینید ستاره ای به درکشون ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد یا علیس و مونس شد به نصفه اون ساخته کمال خوجندی ساخته که شبیه که روی تو ما را چراغ مجلس شد به سوختن دل پروانه وش محووث شد یعنی حوست محووث کنند. بعد با این شعر آخرش میگه که کمال نسخه رندی بسی مطالعه کرد که در دقایق علم نظر مدرس شد نشد به طرز غزل هم انان ماه اگر اگرچه در سفر اندان عبول فاوریس این داوری حافظ درباره اینوری کمال خوجندی درباره حافظ. بعد گفتن که روزی شعر کمال خوجندی رو برای حافظ خودن. یار گفت از غیر ما پوچان نظر گفتم بچه چ.وان گهی دزدیه در ماامی جا گفتم بچه چ. دوگرد سر در بیابان غم تشنگان را جرعه ای از ما بذار گفتم بچند حافظ فرمود که مشتب این بزرگوار عالی است اون نظر اونه اون نظر این را بدونید که حال ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق اون باز غزل بسیار امید بخش سکت بر بسار نگار من که به اشاره سریعی به چیز اشاره سریع است به شاه که درست زیادی نفید نگار من که به مکتب درخت و خط نوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرد شد در این حال گروه از کسانی که سعی میکنن آفض رو تفسیر پیمی بکنن میگن که این اشاره به سیخنبر اکتمه که عموی بود به مکتب درخت و خط ولی ارز کردن که شاه شجا یه چند، چند تحتیم دشته ای برد. نگم، بچ. شاه شجا بله، جورشت مردم خوب بودن. البته که، بله خوب بوده بگه. تناسبی دیگر هم که اصلا، نه آخه، بعضی کسان خیلی به صورت بدی با پیرحمی پشته رو نمیان، ولی برونه هم خیلی خوب بوده، والا اینا هر افرور شمالیسی در جد رو گرفتن دیگه اینا کرمان و مجارن وقتی گرفت و بیتونه اسپهان و اینا و یه دفعه برادرش سورش کرده آمدن حتی از شیراز بیرونش کردن از این بود ملک از دستش بره ولی رفت و خاخشاری کرده برادر آدم مزهرفی بود بعد از مردم شیراز به سکتو آمدن برگشتن ازش بعد برگشت طرف کرمان رفت و موجهتی در بود. بعد برگشت صاحب عمود بردرس رو گیرون کرد و خودشون رو صحیح این تو جنگ میسیم اینا رو به اختصار تو همین جل دوم حافظ خانلوی هست یه وقت یه چیزی هم من چیز کردم فوتوکوفی کردم دادم به دوستان دارم بگیریم که اطلاعات مختصره به نگار رو من که اون مکتب من ببونگه اون علاقه بر اون معنی که میدونید به معنی میل و آرزو هم هست سعلی میگه ببونگ آن که شب در حرم بیا آدن حرم محصول که شب در حرم بودن که ببونه ندره به بونه آن که شبیه در حرم بیا ساین هزار بادیه سهل از درده بیماره این به بونه یعنی به آرزیه به میگه اینه همین به بونه اون دل بیمار آشغان سستبا تدای آرز نسین و چشم نرکس به صدر مستوه هم می‌نشانده کنجون مستوه یعنی صدقون سندلی که نبود اون وقت کم بوده اون که سندلی رو می‌گوستن کورسی انوزم در پاکستان می‌گن کورسی بعد بعد چنار جایی که می‌خواستن مردم بشینن که تارزان رو یا روز همین نشن اصلا بلندتر میشینن این بلندی میبستن، آجار و اینا سک کنن دوتا دوره اونجا تو قابخونه ها من دیده بودنم که بچه گیر دید دیده بودن که بچه بودن که نزیوارو مردم میدنن میمشستین او رو میگن مستفه به صدر مستفه هم میمشانده که یا گدای شهر نگه کن که میره مجلس شد یعنی به من عزت خیلی میتره شاه شجاع مرد خیلی خوشقد و بالای خوشچهره زیبایی بوده نارسیس هم بوده یعنی دوست داشته که از زیباییش تحریف کنید یعنی خوشش میامده و حتی به غیرمستقیم طلب می کردی که زیباییش و ستایش اینست که این که این حرفا رو می زنه که پیداست خطاب شاشجایی که این اشکوازی با زن می نیست با پسر خوشکل هم که نیست برای اینکه این شاهدی که چهار که اینکه یه وقت خدای نخواسته بره تجاوز غرضه که نمی کنی بنابراین اینا حرف مفته که می زن. زیبایی مردانست داره ستایش میکنه اون اون, اون غزل معروف به واقع منظر چشم من آستانه توست کرم نما خروداک خانه خانه توست هم خطاب به هاشو جا اگه کسی ندونه فکر یعنی برای زن میشه این همه اون مطالب رو گفت بدونین که جزکال بشه که ولی بعد که آدم میدونه نگاه میکنه ببینید آره این هیچ مطلبی که برای زن گفته بشه و برای مرد نشه بگی نداری میخوزه لمن در حال دقیق کنی میبینید هیک نداره که محسوس زن بشی سرای محبت کنون شود مهمور مهمور یعنی آباد بگی میگی سرای محبت کنون شود مهمور که تا آقا یار منش مهندس شد مهندس تربسرهای محبت تاق عبروی یارمانی لب از ترش توهمه پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد یعنی وسوسه کننده کرشمه توست، شرابی با آشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس بود میکده یاران اینان بگردانی چرا که حافظ از این رفت و مفلس شد مفلس یعنی ورشی کستی اطلاس یعنی ورشی کستی کس تحریف ورشی رو دار شکست رسید. تمام مخاطب، دیگه غالب حال ما اگر نیمه امروز ماجمه‌ی دوراهی که پاب پرداخت ماجرمون دیوونه می‌کنه. اینو می‌گیم مرحله. این اول متوقف میشه. مرحله قبل از ورشکستگی توقف توقف وقتیست که شخص پرداخت دینایی که سر وقته نمیتونه بکنه ای به عقب بودیسه. خب این عقب این داخل رو یه حد بیداریم که از اون حد که بگذاریم نمیشه که میچه از من. بعد از توقف مرحله ورشکسته. یعنی ثابت میشه که دارایی این کافی برای پرداخت غرضش نیست. اون وقت میان او رو از تصرف در انبالش ممنوع میکنن و یک کس دیگری یا یه حیعتی که معمولا دادستان تعیین میکنه، تعیین میکنن به نام حیعت تسکیه که اینا بیان انبال آخا زیر نظر بگیرن و به طلبکارها بدن این طلبکارها بعضی هاشون صدی صد میگیرن مثلا حق حساب زن ترجیه چهار ماه در اروزش یا نفقهش اگه زن تو خونه بره مخارجش یا مهرش اگه زن بخواد توان توان باید بده اول از اون پول اینا رو این حقوق زن را کامل میذارند بعد باقیش هرچی میمونه بین طلاقگار را تقسیل میکنه اگه 10% میرسه خوبه 20% درصد میرسه خوبه 30% میرسه خوبه هرچی میمونه اون تلابی که موقع ورشکستگی بگید صد درصد پرداخت میشه به اون میگن طلب ممتازه میگن حق و حق زن طلب ممتازه است محر زن طلب ممتازه است یعنی صد درصد پرداخت زن وقتی که زن شخصی کن همون ساعت میتونه محرسی هر ساعتی زن محرشو خواست ملت اوستی که هر ساعتی خواست سوهای هم تو محرشو میده شد یعنی برشکست اینجا یه نقطه مهم رو بگم اون این است که حافظ وقتی که اگر میخواسته بهش ممدوحی به شخصی اشاره بکنه معمولش این بوده که قزل رو تمام میکرده بعد از تموم شدن قزل یه بیت یا دو بیت گاهی هم سه بیت اشاره میکرده اون رو هم دوش این دلیلش اینست که هر کسی دوست نداره اون سه بیت مدهوب بخونه فنیزش تو این قزل اینجا تموم میشه زرهان میکده یا رو ننانده گردانیم چرا که حافظ از این راه رفت رو مخلص بعد میگه خیال آب خزر و تو جام کیخوس رو جام کیخوس رو درسته برای اینکه اون جام جهاندین جام جم نیست من یه بار به تفصیل گفتم ولی حالا چون ممکنه به این تازه آمده باشن آز میگنم جام جهان نما یا جام جهان دین متعلق به کیخوستو و جام کیخوستو بسید در داستان بیژن و منیجه به وقتی که بیژن رفت و با منیجه وردست بردش در حقیقت بیهوشش که برد به خاک کوران و بعد اون گیر افتاده و حسش کردم چه چه بدبختی و معنیجررم دییرونش کردن که میرفت با با, با رخشوری و با بدبختی و با جدایی و دوره گردی لوکنونی فرام می کردیم از چا میش پایین برای اینکه دیژ نمیره. اینجا اشاره کنم بکنم که زندانیا در در اسلام در همه دوره ها شاید در افغانستان هم درشه. زندونی جیره ندارن. یعنی میگه هیچو نیست. یارو آدم کشته بیارن شامون‌هاشون بدهن بخوره، زهر مار بخوره. می‌کنه تو سوراخ دارن می‌بندن. حالا اگر این زندانی کسی کاری، زنی، خواهری، پدری، برادری داره، چه اونها باید قرانش اگر نداری، هفته ایست روز با یعنی، حالی، یعنی آجانا میان دستمند میزنن یه دست زندانی رو به یه دست خود روزهای تحتیب کشید ندارن، میاد دست دستمند میزنه با زندانی، با میسن تو خیابون زندانی می کاسه میگیدن. مردم میدونن که این دیگه گدای دروغی نیست اون مستحق قطعیه یعنی اگه بهش ندن از گذنگی خواهد مرد یعنی که مردم می‌کنون خواهم صدقه بدن و صدقه‌شون حتماً درست باشه به این زندانی پول می‌دن که این دوزگاه را حتیش ما آجانه که فلشبایسی نیست، برگیرم اون اینکه بله مفتکی که نمید بایست کن دو چه کار کن بازه زندانی میبره و خرچ خود میکنه ما افغانستان تا چند پیش من حالا که شلو خلق شده وقتی کمونیست به خبر ندارم ولی پیش از اون همینطور بوده و در دورهای گذاشتم هم همه همینطور بوده زندانی آدم کن شده چه آخون این که چی بله وله ارض کنم که بیژن هم هم میتاری کرد انداختانش تو چاو و در سنگ هم گرشن داری ها به دخترش گفته که انقدر خاطر خواهی این پهلاوان ایرانی برو کنم تو برو تام. کرد بعد بیژن یه دونه پسر مادرش بوده مادرش دختر رستن بوده یه دونه بکشه داشته یه پسر دستانم بیژن بوده پانوگوشه سوهرش هم گیف بوده، پسر دوده پهلوان بسیار نامی ایران کسی که خسرو رو از پوران آورده به تحقیشونده اینا دیمونه شده بودن یه دونه بچه شون گمشد تو سرزنون بلاخره اومدن دوده، پدر گیف و رستن، پدر قانون آمدن پیش شاه که آقا دست هم که کننه خی خسرو که مطمئن باشه که جان و فقط سبر کنید موقع تحویل سال و در لحظه تحویل من جامع جهانمه ها رو میبینم و پردوسی مختصر شرحی هم راجب این جام جهان ها میده شرحی که میده یه چیزی شبیه این جامعه چرکیی داریم دیدید جام چرکیی داریم که دور هست و آبدعا دارم سر عشقا کن جامعه یک چیزی شبیه اون که صورت های فلکی رو اطراف اونجان چنده بودم چه کرد بودن اینو خورنبید کرد و نگاه کرد و اونجا دید احوال ریژن رو و دید که در خواهد توران همه جای قطعات مختلف دنیای اونجا در اینجا مجسم میشد دید که بیژن در توران در حب بعد درستم گفت و باقی قصده این جام جهانبین که در حافظ جام جهانبین میگن بهش جام جهانما بهش میگن جام آلمدینم بهش میگن بعد نوش از جام آلمدین که بر اورنگ جم شاهد محصول را از رخ مقابنده جام جهانما زمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه آجه. این جامعه که خست و حافظ چند بار به جامعه که خست رو اشاره کرده یکیش همینجاست یکی دیگه در اون غزله ای که بر ماه از خط مشکل نقابنداختی لطف کردی سایی آفتاب آفتابنداختی دیگه که این هار از آب آن آرز خوبان را از آن تشن لب کردی و گردان را در آب انداختی کنم که باده نوش از جام بین که بر رنگ جمع شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی ارز کنم که دوی خوبی بردی از خوبان خلق شاد با جام کیخسرو طلب کفراسی آورد دارد. خسرو نظامی میگن این همین جام کیخسرو. این بر به دلیل تناسب لفظی که بین کلمه جم و کلمه جام ده و به علت این که جمچیت میگن اولین که آین میگساری و بد رو مقرر داشت کم کم این تبدیل شده به جام جم و جام جم معنی عرفانی هم پیدا کرده جام جم کنایه از دل عارفه که همه ی در اون مرکس می که فناهی میگه به دان که جام جم دل فید به هر حال جامیه که خسو خیال آب خزر بسته آب خزر آب خزر یعنی آب حیات میگه دل یا هر کسی، خیال آب که جرب از تو جا میکه این خود که تنیا میخواد به جرع نوشی سلطان عبال فوارد، آمد تو شافید عزیز وجود در نظم من آری، قبول دولتیان کیمیایی نسید این همون است که سعدی هم در بیوچه گلستان که زان که تو را بر من مستیل نظر است آثارم زافتاب مشتیط تر است ور خود همه عیب ها بدین بنده در است هر عیب که سلطان به پسنددونه این همونی تو زر عزیز وجود است نازمورد آری قبول دولتیان چیمیاری این بسید در زن شکرات نفسی هم می کنه وقتی آراسته شد به نظر قبول شاه شد زرد خب بگه به غذابی بیگری که نمی آباد باید. نهان که میدید. یمه قری روخشن بینید. البته ها این اون جامو دست بنده بینید. باید. از کنون که یعنی غزال بعد و شجریان در گوشه بیداد همایون کنده یاریندر کس نبیدی، یارا خب، اینجا یکی دو دقیقه موندهه ولی بنده در راه خوده آزاد کنید لنکه نمیشیم غزر زیگه بکنید زیرین امشب دو دقیقه چم بسیشیم بهتون بیدیم